قناعتبار تکیده بود قناعتبار تکیده بود باریک و بلند چون پیامی دشوار در لغتی با چشمانی از سؤال و اصل برخساری برتافته از حقیقت و باد مردی با گردش آب مردی مختصر که خلاصه خود بود خرخاکی‌ها در جنازت به سوء زن می نگرند. پیش از آنکه که خشم سائق خاک استرش کند تسمه از گرده گاو طوفان کشیده بود آزمون ایمان های کهان را بر قفل معجرهای عتیق دندان پرسوده بود بر پرتوفتاد ترین راهها ها پوزار کشیده بود رهگذری گذری نامنتظر که هر بیشه و هر پل آبازش را می شناخت جاده ها با خاطره قدم های تو بیدار میمانند. که روز را پیش باز می رفتی هرچند سپید تو را از آن پیش دمید که خروسان بانگ سر کند. مرغی در بالهایش شکفت زنی در پستانهایش باقی در درختش ما در اتاب تو می در شتابت ما در کتاب تو می در دفاع از لبخند تو که یقین از تو باور است, است. دریا به جرعی که تو از چاه خرده ای حسادت می